فصل بیست نمیدانم آیا در آن زمان اون لوژ لژ فراماسانری یا نه خود من مانند بسیاری دیگر از بوجوه ها و بزرگزادگان روستایی منطقه بعدها با این سرک آشنا شدم و این پس از نخستین لشکرکشی‌های های اون بود بنابراین نمیتوانم نمی‌توانم بگویم که نخستین رابطه های برادرم با چگونه بوده است. ها به بازگویی داستانی می‌پردازم که کمابیش به این دوره مربوط می شود و شواهد چندی از درستی آن حکایت می کند. روزی از روزها دو مسافر اسپانیایی به امبراز آمدند. به دیدن بارتلومه اوکوانیا رفتند که شیرینی پس بود و همه میدانستند فراماسون است. گویا خود را به عنوان دو برادر از لاژ مادرید معرفی کرده بودند. زیرا کاوانیا همان شب، آن دو را به گرده همایی فراموسان های اون آورد. این گرده همایی در آن زمان در فضای باز در جنگل و در روشنایی چند مشعل و شم برپا می شد. داستان آن شب را بعدها خورده خورده و به حدس و گمان دانستیم. اما فردای آن شب همین که دو اسپانیایی از مهمانخانه بیرون آمدند کزیم و دنبالشان افتاد و بیان که خود را نشان دهد، از بالای درختان آن را زیر نظر داشت. دو مسافر خود را به حیات مسافرخانهای در بیرون شهر رساندند کوزیمو بالای درخت گلیسینی جا گرفت. مشتری سومی سر یکی از میزهای مهمانخانه نشسته و منتظر دو مسافر بود. چهرش دیده نمیشد چون کلاه سیاه لب پهنی به سر داشت. هر سه سرهایشان را روی سفره سفید میز خم کرده بودند. پس از اندکی گفتگو مرد ناشناس به نوشتن چیزی روی باریکه ی از کاغذ پرداخت آن دو نفر میگفتند و او می نوشت. چون این می نمود که سیاهی از نامهای چند کس را می نویسد. کوزیمو از آن بالا گفت صبح خیر آقایان. هر سه سر بلند کردند. با چشمان دریده به سوی مرد بالای گریسین خیره شدند. ولی یکی از آنان یعنی همانی که کلاه لبه پهن داشت بیدرنگ سر خود را پایین انداخت به گونه ای که نوک بینیش به لب میز خورد. برادرم با همان یک نگاه دید که چهره مرد برایش آشناست. دو مرد دیگر به اسپانیایی گفتند صبح خیر آقا، این رسم این طرف هاست که مثل کبوتر به سراغ غریبه ها بروند و از بالای سر به آنها سلام کنند؟ امیدواریم از آن بالا پایین بیایید و این قضیه را برای ما روشن کنید. باران گفت آنهایی که بالا هستند همه میبینندشان. اما کسانی هم هستند که میخزند، تا از چشم مردم پنهان بمانند کسی مجبور ما نکرده را به شما نشان بدهیم نه صورتمان و نه نشیمنمان را اما کسانی هستند که پنهانکاری را برای خودشان افتخار میدانند بفرمایید چه کسانی؟ مثلا جاسوسها دو مرد یکی خوردند سومی که چهره خود را پنهان میداشت از جا نجام بید ولی برای نخستین بار صدایش شنیده شد به کندی گفت یا اگر مثال دیگری بخواهید اعضای فرقه های مخفی کزیما کمی فکر کرد. سپس به تندی گفت؟ این حرف شما را به چند نوع می شود تبیر کرد؟ یا می خواهید بگویید که من عضو یک فرقه مخفیم، یا اینکه خودتان هستید یا اینکه هردومان هستیم یا اینکه نه من و نه شما نیستیم و کسان دیگری هستند، و یا شاید هم میخواهید از من حرف بکشید مردی که کلاه لبه پنداشت هاج واج پرسید چه گفتید؟ چه گفتید؟ چنان جا خورده بود که فراموش کرد باید چهرش را مخفی نگه دارد سر خود را بلند کرد و در چشمان کازی مخیره شد برادرم او را شناخت دنسول پیسی یسوعی بود همانی که در باسالیوا با او دشمنی می کرد اها پس اشتباه نکرده بودم خودتان را لو دادید پدر روحانی شما میدانستم دانستم شمایید راهب اسپانیایی کلاه خود را برداشت و سر تراشید را خم کرد و گفت دونسل یا گادلتت فرماندهی از فرقه فداییان مسیح برادرم گفت کزیما رندو فرامسان تو مرد دیگر نیز خود را معرفی کرد دون کالیکسته دون فولجنسیو این آقایان هم یسوعی هستند؟ بله، ما هم هستیم مگر پاپ فرقی شما رو منحل نکرده؟ دون سلپیسیو همچنان که شمشیر خود را بیرون میکشید گفت نه برای اینکه که دست شما را برای فسخ و الهاد باز بگذارد پس از انحلال فرقه، راهبان یسوعی اسپانیا دست به کار شده بودند و میکوشیدند در همه منطقه های آن سرزمین نیروهای شبه نظامی برپا کنند و با آنها به جنگ اندیشه های نوین و بدعت‌های های مذهبی بروند. گوزیما شمشیرش را بیرون کشید. مردم کم کم جمع می شدند. راهب اسپانیایی گفت اگر می مردانه به جنگید از درخت پایین بیایید. درختان گردویی در آن نزدیکی بود. فسل برداشت بود و روستاییان چند سفره را به تنه درختان بسته بودند و گردوها را درون آنها میریختند کوزیمو خود را به یکی از آن درختان رساند و روی سفرهی پرید و راست ایستاد. شما باید چند وجبی بالا بیایید، دون پیسیو. من خیلی بیشتر از آن مقداری که عادتم است پایین آمدم راهب نیز به درون سفره پرید. به دشواری میشد سر پا ماند. سفره تکان میخورد و زیر سنگینی آن دو گود می‌افتاد. اما آنچنان خشماگین بودند که خود را سر پا نگه داشتند و سرانجام شمشیرهایشان به هم خورد راهب بلاتین فریاد زد به نام پروردگار متعال به نام معمار بزرگ کائنات و با هم درگیر شدند پیش از آنکه این شمشیر را توی شکمتان فرو کنم بگویید ببینم از ارسولا چه خبر در یک سومه مرد این خبر کسیم را گمان من این است که خبری ساختگی بود و راهب به امد آن را گفت تا بتواند ناجوان مردان از آن بهره بگیرد در همین گیرودار راهب با یک خیز خود را به یکی از گرههای سفره در پشت سر كزیمو رساند و آن را با ضربه شمشیر پاره کرد. كزیمو به سوی دونسولپیسیو پرید و ی دیگر سفره را گرفت و گرنه به زمین افتاده بود در همان حال پرش شمشیرش دفاع راهب را پس زد و تا دسته در شکم او فرو رفت دون‌سُلپی سیو به خود پیچید از بالای سفره خورد و نقش زمین شد کزیمو از درخت گردو بالا رفت دو یسویی دیگر هم مسلک خود برداشتند و رفتند و دیگر پیدایشان نشد هرگز ندانستیم که راهب مرده بود یا فقط زخمی شده بود مردم دور سفره آلود جمع شدند از همان روز بود که برادرم به فراماسونی معروف شد به خاطر پنهانکاری فرقه بیش از آن چیزی از آن ماجرا ندانستم بعدها ها که خودم عازف شدم، میشنیدم که درباره یک کازیما به گونه ای گفتگو میشد که گویی در گذشته ها اوضف بوده است و رابطش با لوش چندان روشن نیست. برخی میگفتند که رابطش در حال تعلیق است. برخی دیگر از او مانند مرتدی حرف می زدند که از فرقه رو گردانده و به آیین دیگری گرویده باشد. برخی دیگر او را فقط مرتد میدانستند و بس. بلی همه به خاطر کارهای گذشتش از او ستایش بعید نمیدانم که او همان کسی بوده باشد که به دارکوب ماسان معروف است و بنیادگذاری لوژ عمر را کار او میدانند نخستین آینهای این لژ ویژگی هایی داشته است که میتوان اثری از باران رنددو را در آن دید. برای نمونه عضو تازه لوژ را با چشمان بسته از درختی بالا می بردند و سپس او را ریسمان پیچ پایین می می دانیم که نخستین گرده همایی ماسان های ناهیه ما شبها در جنگل برپا می شد. بنابراین به آسانی می توان پذیرفت که نیز در آنها شرکت کرده باشد. می توان چون این پنداش که یا خود او پس از آشنایی با رابطی خارجی لژه امبروزارا برپا کرده یا اینکه کس دیگری در فرانسه یا انگلیس به این سلک درآمده بود و آن را در ناهیه ما بنیاد گذاشت. اگر این یکی فرض درست باشد میتوان چنین نتیجه گرفت که تا مدتی فراماسونری در ناحیه ما وجود داشته و کازیمو از آن بی خبر بوده است صحنه آشنایی او با فرقه را میتوانم چنین مجسم کنم شب است کازیمو در حال گشت و گذار در جنگل به فضای بازی میرسد و چشمش به گروهی می افتاد که همه لباسهای عجیبی بتن تن کرده و ابزارهای شگرفی در دست دارند و در روشنایی شمع گرد آمده می ایستد و گوش میدهد سپس به زبان می آید و با یکی از آن جمعه هایی که همیشه دوست داشت بگوید گرده همایی را به هم می زند. جمعه ای ماننده کسی که دیوار می کشد جدایی می اندازد. ماسان ها که از دانش جرف او آگاهی دارند او را عضو لژ می کنند و کارهای ویجه ای را به او می سپارند و او بسیاری از آین ها و نماد را که خودش دوست دارد به آین های لج می افزاید. تا زمانی که برادرم در این کار بود، ماسانری فضای آزاد آینهای بسیار مفصل و چشمگیری داشت و بسیار چیزها از جقد و تلسکوپ و سیبک کاج و تلمبه آب گرفته تا قارچ و لوله آزمایش و تارن کبوت و جدول فیسا قرس در آنها به کار گرفته میشد. شد. جمجمه های بسیاری چه از آدم و چه از گاو و اقاب و گرگ نیز در کار بود. این چیزها و بسیاری ابزارهای دیگر را مانند پرگار و گونیا که از ابزارهای سنتی آینهای فراماسانری است، به ترتیب ویژه از برخی درختان می آویختند. بیشتر مردم چنین می‌پنداشتن که این کار نیز از خلبازی های بارون است. بسیار پیشتر از آشنایی با فراماسانری، کزیما با چندین انجمن و کانون سنفی رابطه داشت. از آن جمله بود. انجمن کفش دوزان؟ جمعیت بشک سازان با ایمان، انجامن زره سازان درستکار، کانون کلاه دوزان صدیق و مانند اینها. از آنجا که همه آنچه را که به کارش می آمد، خودش می ساخت در چندین حرفه کار آمد شده بود و از عضویت در چندین کانون سنفی دم می زد. آن کانون ها نیز بسیار سرفراز بودن از اینکه که عضوی بزرگزاده و دانشمند چون او داشته باشند که از همه اینها گذشته هیچ چشم داشتی از آنها نداشت. هرکس ندانستم که کازیما چگونه می توانست شور و دلوستگیش به زندگی اجتماعی را با گرایش همیشگیش به گریز از جامعه آشتی بدهد. و این یکی از ترین ویژگی های او بود. هرچه بیشتر به زندگی دور از آدمیان در بالای درختان خو گرفت، به همان اندازه نیز میکوشید که رابطه های تازه ای را میان هم نوعان خود برپا کند. بلی با آنکه با جان و دل به بنیادگذاری انجمن تازهی می پرداخت و اساس نامه و هدف آن را با دقت ترریزی می کرد و بهترین کسان را برای کارگزاری آن برمی هرگز نمی دانست که تا چه اندازه می توان بر او اتکا داشت. پیش از هر چیز نمی دانست او کجاست و همین برای خود مسئلهی بود. در گرما گرم کار ناگهان پرندوار گم می شد و دست کسی به او نمی رسی. در توجیه این دو گرایش متضاد او میتوان چنین گفت که او با همه شکل‌های زندگی اجتماعی موجود دشمن بود و در گریز از آنها سرسختانه میکوشید شکل‌های تازه از رابطه اجتماعی را تجربه کند. ولی افسوس که هیچ کدام اینها را به اندازه کافی تازه نمیافت و از آنها خوشنود نمیشد. از همین رو بود که پیاپی به زندگی وحشی رو میاود. آرزوی جامعه همگانی را داشت که همه مردمان را در بر بگیرد و هر بار که می‌خواست آن خود را در انجمنی گرداورد و آنان را یا برای هدفی مشخص مانند برنامه مبارزه با آتش‌سوزی جنگل و یا در کانونی سنفی جمع کند آنان را به گرد همایی شبانه در جنگل فرا می خاند و خود از بالای درختی برایشان سخنرانی می‌کرد آن گرد خود به خود حالتی پنهانی و فرقی و ارتداد آمیز به خود می گرفت. بعدی بدیه که در چنین شرایطی از همه چیز چه خصوصی و چه کلی سخن میرفت و به آسانی میشد از گفتگو درباره مقررات سنفی به مسائل جهانی گریز زد و طرح برپایی جمهوری جهانی انسانهای آزاد و برابر و درست کار را پیش کشید. در فراماسونری نیز کوزیمو تنها از این شیوه خودش پیروی میکرد. یک بار بزرگ لندن نموینده ای را به دیگر کشورهای اروپایی فرستاد تا از لژه برادر دیدن کند. و این فرستاده با دیدن تکروی لژه امبروزا که با هیچ کدام از مقررات فرق همگام نبود چنان جا خورد که آن را لوژی انشعابی پنداشت و بیدرنگ به برادران لندنی خبر داد. سپس داستان دو مسافر اسپانیایی پیش آمد. آن دو که به گرد همایی لژ برده شده بودند، همه چیز را کاملاً عادی یافتند و حتی گفتند که آینهای لژ امبروزا درست هماننده لژ بزرگ مادرید است. همین نکته بود که کوزی را به شک انداخت زیرا بهتر از هر کس دیگری میدانست که آن آینها ساخته و پرداختهی خودش است. در هر حال، من برانم که تغییرهایی که او در آینهای لژ داده بود از نیاز شخصی او پیروی می کرد. چه؟ به خوبی می توان تصور کرد که آدمی چون او که به هیچ بهایی نمی پذیرفت که ای بسازد یا در ای زندگی کند، آمادگی آن را داشت که نمادها و ابزارهای همه حرفه ها بجز حرفه ماسانی یعنی بنایی و معماری را گرامی بدارد.